سلام عرض می کنم و فکر کنم که خسته اید این موضوعی که می خوام براتون صحبت کنم یه خورده مفصل می 설명 می کنم کوتاهش کنم یه خورده زیر عوض کردم اون قبلی خیلی ناامید کننده بود من ماجونه ورشناسم و نویسنده و چند وقتی متوجه شدم که از دو جهت دارم تهدید میشم از یک طرف جانور دارن منقرز میشن و اگه همینطوری پیش بره تا چند وقت دیگه اثری ازشون باقی نیمونه صورت مسئله پاک میشه دیگه نیازی به جانورشناس نداریم از طرف دیگه من نویسندم و خواننده ها دارم منقرض میشن به خاطر همین من احساس خطر میکنم ناچار شدم که راجع به این موضوع کمی مطالعه بکنم یعنی مطالعه بکنم درباره افرادی که مطالعه خونه خانواده‌ام نمی‌دونن من توی همین مخمصه افتادم. به خاطر همین ننشستم امروز بیان اینجا. شوخی کردم میدونن دیگه هم خونه رام نمیدن. ببینید ما یه اصطلاح داریم لیتراسی یعنی با سوادی یه اصطلاح داریم ای لیترسی یعنی بی سوادی و اصطلاح سوم که راجبش صحبت کردن ای لیترسی سال 1987 یک استاد دانشگاه نیویورک اینو ساخت درباره بحرانی که تو آمریکا تشخیص داده شد و این بحران جهانیه و به موازات آمریکا شانه به شانه آمریکا ما هم داریم تجربهش میکنیم اینجا که کسانی هستن که ترمودینامیک خونده باشن و راجعه انتقال حرارت باید بدونن میخوام بگم که مطالعه چیه یعنی رابطه ما با کتاب چجوری هست یه استادی داشتیم که میگفت که لازم نیست حتی کتاب رو مطالعه بکنید همین که جلدشو ببینید، عنوانشو ببینید ورق بزنید، فهرستشو و احیانا مقدمشو بخونید این کفایت میکنه یعنی یه جوری محتوای کتاب از طریق رسانش به شما منتقل میشه دوستی داشتیم که به تأثیر کتاب بیشتر از اینا ایمان داشت و حتی مطالعه رو شرط ضروری برای تأثیر گرفتن از کتاب نمیدونست میگویم که کتاب تو کتاب خونه هست تأثیرش از طریق تابش و همرفت به شما منتقل میشه لازم نیست نمید بکشید بخونید من یه جایی خوندم که تاتارهای 2000 ازار سال پیش کتاب رو می‌خوردن چون فکر می‌کردن اگه کتاب رو بخورن اطلاعات داخل کتاب بهشون حکمت کتاب بهشون منتقل میشه این میشه چهارمی یعنی انتقال جرم از این طریق اون ناسوادی رو من خودم معادل سازی کردم و اگه کسی می‌تونه بهتر از اون پیشنهاد بکنه استقوال می‌کنم چون من فارسی برش ندیدم این یکی هم همینطور جان ریدینگ هم اسمش رو گذاشتم هل هوله خانی ببینید اینکه شما انتخاب بکنید که چی بخونید یا اینکه صفحه وب رو باز کنید هر چه پیش آمد خوش آمد اون اسمش مطالعه نیست اسمش حله هوله خانیه و اصطلاح انگلیسی ش هم ریدینگ نیست شما توی وب ریدینگ نمی‌کنید سرفینگ کنید سرفینگ هم یعنی وبگردی یا همون ولگردی در اینترنت اما چرا باید مطالعه کرد یعنی اگه مطالعه نکنیم همون سوالی که اول مطرح کردیم یعنی اگه مطالعه نکنیم چی رو از دست میدیم؟ من اینجا چند موردی که معمولا جاهای مختلف اشاره میشه و جمعوری کردم که نشونتون بدم یکیش تجربه های غیر ممکنه شما از طریق کتاب به زمانی سفر میکنید که در واقعیت امکان نداره به جایی میرید که رفتن به اونجا برای شما غیر ممکنه و در شرایطی قرار می گیرید که ممکنه درش قرار نگیرید مثلا در شرایط جنگی یا زندگی توی یه حکومت توتالیتر مثل شعروی دوره استالین یا مثل این دوامن که مهارت کلامی شما تقویت خواهد شد ما این مشکل رو داریم هنوز توی دانشگاه حتی استادانی ما داریم که از نوشتن ایده خودشون توی یک صفحه آچهار آجزن حتی یه نامم نمیتونن بنویسن وفایی کنم همه دوستان متوجه شده باشن که اخیران چقدر غلط املایی زیاد شده ام ما یه, یه تابلو داریم نوشته توی تهران شیخ فضل الله دو تا تابلو زیر بالا بالاییش با یه لام هست پایینیش با دو تا لام الله دو تا لام داره نه یکی تمام سطح شهر پر از الله که یکی یه دونه لام دارن مطالعه ورزش مغز هست. خیلی از افرادی که سالمن بودن و به سنین بالا رسیدن گفتن که مطالعه بهشون کمک کرده. پژوهش داریم که نشون میده که در جلوگیری از آلزایمر و زوال عقل هم هست. زمنان تمرین حافظه است. شما وقتی که کتاب میخونید باید یه عالم اسم و مفهوم و نظریه و استعاره و اسم جاهای مختلف رو به خاطر بسپورید. اگر کتاب خوندید و به این نتیجه رسیدید که نویسنده داره سر شما کلاه میذاره یا پیش کردید که, که الان میخواد اینو بگه یا اگر شما بودید یه جور دیگه نتیجه میگرفتید به خاطر اینکه کتاب خوندن تفکر انتقادی رو در شما تقویت میکنه و تخیل راجبش صحبت نمی کنیم میدونیم همدلی یک یه عالم خبر خبر جنگ و آدمکشی و انفجار و تخریب طبیعت و انقراض حیات وحش میشنویم از طریق تلویزیون دیگه حساسیتمون هم بهش از دست دادیم چرا به خاطر اینکه کارکردش همینه وقتی توی چند ثانیه یه چیزی رو پیو پی به شما هر روز بگن شما حساسیتونو نسبت به اون از دست میدید کتاب اینطوری نیست به ذهن شما فرصت میده تا باش درگیر بشید و احساس حمللی بکنید. تلویزیون در شما احساس همدلی ایجاد نمیکنه. موفقیت تحصیلی، بچههایی که کتاب میخونن فقط تاریخ و ادبیاتشون بهتر نمیشه. علوم و ریاضیشون هم بهتر میشه. برای هر چیزی برای خوندن هر چیزی شما نیاز به کلام دارید. و بلند پروازی کسایی که کتاب نمیخونن الگوهاشون محدود به عموع و خاله و ادایی و همین اطرافیانشون هست. ولی اونایی که کتاب می شوق تجربه جهان دارن دلشون میخواد که برن تجربه های جدید پیدا بکنن جهان رو بشناسن روابط اجتماعی ما هم دیگر رو میبینیم راجع به چی صحبت می کنیم اگه من فقط راجع به کارم و اینکه چه جوری باید لوله کشی کرده میدونم چه جوری باید جنس فروخت و اینا صحبت بکنم شما شاید علاقه نداشته باشید شما دوست دارید من راجع به چیزی که تازه خوندم راجع اطلاعاتی که اخیرا کسب کردم با شما صحبت بکنم شما آدم خوش برخورتری خواهید شد اگر کتاب بخونید. ذهن شما استراحت میکنه. شما در زندگی واقعی مرتب تحت تنش هستید. کتاب خوندن شما رو غرق میکنه در خودش. به ذهن شما فرصت استراحت میده. شما با خریدن و خوندن کتاب اجازه میدید که نویسنده ها نویسنده باقی بمونن و ناشران هم ناشر باقی بمونن. و آخری شناخت، ما تعریفمون از انسان چی هست؟ آیا ما سرفاند یک موجود اجتماعی هستیم روابط اجتماعی برای تعریف بشر کفیت میکنه نه خیلی از گونه ها اجتماعی، مورچم اجتماعی، هست. زنبور هم اجتماعی. هست. تمام تعریفایی که از گونه ما در طول تاریخ توسط فیلسوفان و دیگران دررائه شده مبتنی بر شناخت است. شما چه دیگه ای می میشناسید برای کسب شناخت اگر ما کتاب نخونیم، این کتاب امسال چاپ شد. سال 2016 اسمش هم هست. اگه دیده بشه دی دیتریسی، سواد جهان. پنج تا میاری که اینجا می‌بینید رو در کشورهای مختلف بررسی کرده، من دیگه نمی‌خونم. و بر اساس این، ده کشور رو که با سوادترین کشورهای جهان هستند. طبقه بندی کرده یه چیزیش که خیلی جالبه اینه که غیر از شماره هفت که امریکا هست اون نهتای دیگه همه در شمال اروپا متمرکز هستن همه کشورهای اسکاندیناوی هستن دانمارک، و لاتویا و آلمان و هلند و اینا اینا کشورهایی هستن که روی موضوع سرمایه گذاری کردن این میارای ای که خدمت شما عرض کردم اینا رو به اگر که اگه رتبند، ببینید. از نظر کتابخانه از نظر روزنامه و نشریات سرمایه گذاری در آموزش نمره هایی که نمراه تحصیلی بچه ها و تعداد کامپیوترهایی که تو خونه ها هست این اطلاعات برای 66 کشوری که در دنیا ازشون آمار وجود داشته تهیه شده چقدر باید مطالعه کرد؟ افرادی که بهشون میگن بوک ورم یا کرم کتاب اینا سالی سی تا یا حتی 40 تا کتاب بیخونن کسی که اسم خودش رو میذاره کتابخون باید ماهی یه دونه کتاب رو بخونه. تو ارزیابی که 6 سال پیش سال 2012 انجام شد اونجا فنلان اول بود با 44 دقیقه مطالعه در روز میانگی نشه اما در مورد دانشجو، چون خیلی از فکر میکنم از افرادی که اینجا حاضرن دانشجو هستند یه دانشو دارای یک شغل تمام وقته و باید 8 ساعت در روز کار بکنه. یک سوم از این باید صرف حضور در کلاس بشه و بقیهش صرف مطالعه یعنی دو برابر ساعت کلاس استانداردش اینه که مطالعه بکنید میشه تقریبا 5 ساعت در روز اما یه دانشوین میانگین به جای که حدود اگه مثلا 16 باید داشته باشه باید 32 ساعت مطالعه بکنه دانشوین میانگین بین 10 تا 17 ساعت در هفته بیشتر مطالعه نمیکنه. آمار آمریکا نشون میده که دانشوهای سال اول بیش از 10 ساعت صرف نوشیدن الکل می‌کنن یکم بیشتر از 8 ساعت مطالعه میکنن یعنی الکل و شما میدونید که الکل تنها مشکلی نیستش که دانش ما دارند یعنی طیف رنگارنگ مشکلاتو اگه برای هر کدومشون وقت بذارید ببینید برای مطالعه چقدر باقی میونه. و آخری هم راجبه کسایی که مدام از فیسبوک استفاده میکنن اینا هفته ای یک تا 5 ساعت مطالعه میکنن گزارش مرکز آمار ایران تابستون 94 نشون داد که هر ایرانی بالای 15 سال روزانه فقط 14 دقیقه صرف آموزش رو فراگیری کرده برای افرادی که فوق لیسانس و دکتر بودن شده 58 و دقیقه برای لیسانس سی دقیقه و وقتی که گذاشته توی 24 ساعت یک ایرانی میانگین برای مطالعه آموزش و ورزش تا مجموعا سی دقیقه است در حالی که هر ایرانی در روز بیش از سه ساعت از رسانه های جمعی استفاده کرده و ما کشوری هستیم که می‌خايم که در واقع در تولید علم پیشرفت بکنیم به کشور علمی اول منطقه تبدیل بشیم میخوایم برای جهان حرف برای گفتن داشته باشیم و اینی که داریم الان راجبش صحبت میکنیم یکی از شاخصهای اصلی توسعه انسانی هست برآورده عمومی حتی همه هم شنیدید که میگن که ایرانی ها دو دقیقه در روز مطالعه میکنن کلی هم جوک راجبش هستش که میگن یکی از دلایلش اینه که مطالعه نمی‌کنن که می‌ترسن دو دقیقه پر بشه بعد در طول روز بهش نیاز بدا بکنم، بعد چون دو دقیقه را دست دادن دیگه نتونن مطلعه بکنن در برابر اون دو دقیقه و اون 44 دقیقه دو سال پیش دبیرکل نهاد کتاب کنهای عمومی کشور میانگین 75 دقیقه و 34 ثانیه رو برای ایرانی ها اعلام کرد که اگه حقیقت داشته باشه ما فنلاند رو با 30 دقیقه شکست دادیم. که خب این, این هم شامل همه چی هست یعنی هرچی که خوندن ببینید همه اینا متعالیه نیست شما ممکنه که بروشور ها رو بخونید بخونید روی بسته ماده غذایی که این چند، چقدر توی صد گرمش کالری داره اینا متعالیه نیست اینا همه رو آوردن یا شما ممکنه که یه کتاب دعایی رو باز بکنید و یه دعایی رو برای هزار و منبار بخونید این متعالیه نیست شما ممکنه که مجبور بشید به خواندن یک کتاب درسی این این مطالعه نیست چون شما فردا امتحان دارید از این،, از این تعداد خودشون گفتن که کتاب درسی و غیر درسی 15 دقیقه یعنی 20 درصد از اون زمان و اگه شما مطالعه غیر رو بذارید کنار چون آمارش هست تقریبا یک سوم میشه تقریبا من فکر میکنم محاله که میانگین مطالعه ها بیشتر از 5 دقیقه در روز باشه در ترین حالت اما اما ما یه عالم کتاب چاپ می‌کنیم یکی از دوستان من اینجا حضور داره و ناشر خیلی معتبری هم هست ایشون می‌دونن که ما چقدر نسبت به کشورهای همسایه خودمون کتابای عناوین جدید منتشر می‌کنیم ما فکر می‌کنم که رکورد اصلا کمتر کتاب معتبری هستش که شما ببینید به فارسی یکی دو تا ترجمه ازش موجود نباشه این کتابا چی میشن کتابو خونده میشن آیا میشه آمار مطالعه رو براساس این کتابا معاسبه کرد این آقا یه ریاضیدان مزاحمه و یه شاخصی معرفی کرد به اسم شاخص هاکین کتاب هاکین تاریخچه زمان احتمالا همه میشناسید معروف به پرفروشترین و خانده نشده ترین کتاب معاصر آیا همه کتابهایی که خریده میشن خونده میشن اینشون یه شاخصی رو با استفاده از کیندل که یه جور بوک ریدر مال آمازون هست بر اساس اون قسمت های از کتاب پاراگرف که خاننده ها هایلایت کردن و توضیح این قطعه هایلایت شده در کتاب یه فرمولی نوشت و محاسبه کرد که میانگین خاننده ها یعنی 50% از خاننده ها چند درصد کتاب رو خوندن یا تا چه صفحه ای از کتاب پیش برای خود کتاب تاریخچه زمان این 6 و 6 بوده یعنی 6 و 6 دهم کسانی که کتاب رو خریدن تا آخرش رو خوندن 6 و 6 دهمه درصد اما این کتاب این کتاب،, کتاب کاپیتال هست مال توماس پیکتی این یکی از مبانی اقتصاد نابرابری هست یک کتاب 700 صفیهی مال ای اقتصاددان چپ فرانسوی که در واقع کتاب مقدس جنبش والستریت هم هست و مقاله ایشون هم توی جورنال والستریت چاپ شد کتاب پیکتی رو فقط شاخص هاکینگش دو چهارده کمترین کمترینه توی کتاب های پرفروش بعضی ها پیشنهاد گرنه از این بعد به جای شاخص هاکینگ از شاخص پیکتی استفاده بکنیم برای آره اینترنت مقصره من فکر می کنم اینطوری نیست اینترنت خیلی به ما قدرت ما افزایش داده این ساعت میگذره آدم اصلا تمرکزش از دست میده خیلی خیلی قدرت سرچ ما رو افزایش داده اینترنت خیلی به کمک ما اومده ما میتونیم از طریق اون به اطلاعات زیادی دسترسی پیدا بکنیم ما دیگه لازم نیستش که کمیکال ابسترکت ها بیولوژیکال ستکت های غول پیکر رو چارپ های زیر پامون بذاریم بریم اون بالا برداریم چون من باشون کار کردم لازم نیست شما تو کاردکس شما دم... اصل میدونید کاردکس چیه تو کاردکس دنبال کتاب بگردیم دیگه لازم نیست فرنگی دهخدا رو ورق بزنید شما لازم نیستش که که دفترچه تلفن رو ورق بزنید. شما لازم نیستش که حتی برای خوندن خبر روزنامه بخرید این کارا رو اینترنت برای شما انجام داده تا نوع اطلاعاتی که اینترنت به شما میده نوع اطلاعات با نوع اطلاعاتی که تو کتاب موجوده فرق میکنه اگر کسی مطالعهش محدود به اینترنت میشه نباید فکر بکنه که مطالعه میکنه بذارید من یه ای بکنم چقدر؟ تمومه؟ یه سه دقیقه وقت میدید من جمع کنم عظمه یه جنبنیو ادامه بدم خیلی. ببینید این چند سال اخیر ما زیاد شنیدم میگن که اطلاعات لقمه ای فاست کپسولی مترویی یعنی یه چیزی که از این اسکا تا اسکای دیگه شما بتونیم بخونین اینطوری نمیشه دنیا رو شناخت همه چی مینیمال شده شما اگر اگر دانشمندی که عمرش رو گذاشته برای یه کاری و اگر شما دنبال شناخت هستید اگر میخواد جهان رو بشناسید باید کتابش رو بخونید ما یه فیلم رو براش چندی میلیون دلار هزینه میشه براش هزاران دقیقه فیلم گرفته میشه افراد خیلی با تجربه کارگردان هنرمندش توش نهایتاً تدوین میشه تو 90 دقیقه ما اینو میزنیم جلو فست فورورد فست فورورد ما حاضر نیستیم حتی این همه زحمت رو تو نوت دقیقه فشرده که اردم اما نشون دادن یا میذاریم نوت دقیقهش بگذره ولی خب ما اون طرف کندیکرش بازی میکنیم چط میکنیم ما تمرکز نداریم ما در واقع تبدیل شدیم به ای که تمرکز خودمون رو از دست دادیم و از اختلال تمرکز هستیم خب این کتاب از جمله کتاباییه که ترجمه نشده سال 50 چاپ شد خیلی پرفروش بود تو آمریکا این توضیح میده که چرا چرا ما این شکلی شدیم این کتاب بسیار اساسی هست و من وارد بحث دیگه نمیشم و این توضیح میده که چرا ما به این شک شدیم چرا ما متناسب با فرهنگ صنعتی با فرهنگ با جامعه صنعتی ما رو غالب زدن و ما رو تبدیل کردن به اون چیزی که میخوان ما باشیم و توی این چیزی که اونا میخوان ما باشیم فردیت وجود نداره اینجاست که در واقع یک تصویر ایدال از طریق رسانه ها پخش میشه و شما همه خودتون رو با اون میسنجید هیچ کس جارت نداره که خودش باشه ببینید یه ریاکاری توی تعریف همینو بگم تاهم میکنم یه ریاکاری توی تعریف ناسوادی ای لیتراسی هست تعریفش اینه کسایی که سواد دارن تمایلی به خوندن کتاب ندارن مثل اینه که شما به من بگید که استیک می‌خوری من بگم که نه چون چند تا استیک خوردم دیگه الان سیر شدم میل ندارم یا اصلا من گیاه خورم بگم نه خیلی ممنون میل ندارم من استیک نمیخورم یا وقت از من پولش رو ندارم شما به من میگید که بریم بیرون استیک بخوریم میگم نه من میل ندارم من میل دارم پول ندارم کتاب خوندن یه مهارته اینطوری نیستش که این افراد میل ندارن بخونن این افراد بلد نیستن بخونن کی باید به اینا یاد بده؟ کی باید به اینا یاد میداد؟ و چرا به اینا یاد داده نشده؟ راجبه فرهنگ رستوران شیفتمون میخواستم صحبت بکنم این آخر سر این بستنی تلاییه که توی برج میلاد صرف شد یه چیزی ما داریم به اسم هرم مازلو این پایین نیازهای فیزیولوژیک شماست خواب و خوراک و اینا، این بالا نیازای شناختی شماست. فرض مازلو این هستش که وقتی این نیازهای شما برطرف شد پله به پله شما میایید بالاتر و اگه همه نیازهای شما برطرف شد میرسید به اخلاق و به معنویات و به شناخت. نمیدونم ما چرا نمیرسیم ما اگه 500 تومان داشته باشیم کیم می خریم. اگه 400 هزار تومان داشته باشیم بازم میریم برج میلاد بستنی می خریم. نمیدونم با چرا داریم دریم این برج هرم مازلو رو لیست میزنیم. متشکم خیلی ممنون مرسی.